درس سوم خواندن تپه مارلیک ایران به علت داشتن تمدنهای باستانی گوناگون همواره مورد توجه باستانشناسان، مورخان و جهانگردان بوده است. به عنوان مثال استان گیلان بنا به دلایل متعددی مانند عبور جاده ابریشم از آن باستانشناسان را به خود جلب کرده است. باستانشناسان در حفاری‌های سواحل دریای مازندران آثاری از دوره های باستان را کشف کردند از این رو به احتمال زیاد این منطقه مهد تمدن بوده است تپه مارلیک در منطقه رودبار در استان گیلان قرار دارد در این تپه آثار کشف شده حاکی از این است که حکومتی مستقل و مقتدر در این منطقه وجود داشته است فارسی آمیانه کتابی گلی ترقی، خواب زمستانی گلی ترقی که متولد تهران است، یکی از نویسندگان نامدار ایران است. او شهرت خود را در پی انتشار مجموعه داستان کوتاه خیش به نام من هم چگوارا هستم به دست آورد. ترقی مجموعه دیگری هم نوشته است مانند خواب زمستانی، دو دنیا و خاطرات پراکنده. وی در بسیاری از داستانهایش تجربیات کودکی خیش را در تهران عواط قرن بیستم به تصویر می کشد. از آنجایی که ترقی زندگیش را نیمی در فرانسه و نیمی در ایران سپری می کند، می توان او را از جمله نویسندگان در قربت تلقی کرد. از یک جا باد میآید از درس پنجره ها، از زیر در از یک سوراخ نامری زمستان آمده به این زودی، زمستان ها با هم بودیم، من، هاشمی، انوری، عزیزی، احمدی، مهدوی و البته آقای حیدری چه زود گذشت، هفتاد و پنج سال یا هفتاد و هفت یا بیشتر نمیدانم حساب روزها و سالها از دستم در رفته دو سال کمتر، دو سال بیشتر، چه فرقی میکنه پیری از کی شروع شد، از کی این مرگ حضور خودش را تایید کرد یک روز یک نفر گفت، پیر مرد مواظب باش نیفتی پشت سرم رو نگاه کردم گفتم آره موزه باش نیفتی برگشتم تا هر که بود دستش رو بگیرم ماتم برد از خودم پرسیدم با منه؟ باورم نشد و گذشتم آقای حیدری می گفت اووو تا سالگی حالا حالا ها مونده یه قرن مونده شایدم هیچ وقت نیاد هیچ وقت چه سرمایی چه سوزی دنیا دارد یخ میزند دنیا دارد همراه من یواش یواش می میرد را روشن می کنم را به بخاری می چسبانم می نشینم و دور خودم می پیچم کاش هنوز تابستان بود کاش هنوز با هم بودیم چی شد؟ چه بلایی سرمان آمد ما که به قول ازگری سرسپردهی هم بودیم با هم بودن من چه آسان بود فکرش را نمی کردیم تقصیر کدام یکی من بود ایران را بهتر بشناسیم خشت یک استاد بنا در حال درست کردن خشت در شهر تاریخی میبد در گذشته خشت که ترکیبی از کاه و گل می باشد کاربرد وسیعی در معماری ایرانی داشت امروزه خشت بیشتر در معماری سنتی و روستایی مورد استفاده قرار می میگیرد علاوه خشت در مرمت و بازسازی ساختمان های تاریخی ایران استفاده می شود در ایران سازمانی به نام سازمان میراث فرهنگی بر بازسازی اکثر بناهای تاریخی کشور نظارت میکند.